حصل شانزدهم. این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان سوس نشود، شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی میآید آید که هر که شما را بکشد، گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید، این کارها را با شما خواهند کرد زیرا نه پدر را می و نه مرا، این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد، گفتار مرا به خاطر آورید این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچیک از شما نمیپرسد پرسد کجا می روی. ولی چون این چیزها را به شما گفتم دلهای شما پر از غم شد با وجود این این حقیقت را به شما میگویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمیآید اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و وقتی او میآید جهان را در مورد گناه و ادالت و مكافات متقاعد میسازد گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من پیش پدر میروم و دیگر مرا نخواهند دید و واقعیت مکافات به آنها ثابت می شود چون هکران این جهان محکوم شده است. چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد. زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد ازان من است و به همین دلیل بود که گفتم حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. بعد از مدتی دیگر مرا نمیبینید ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید پس بعضی از شاگردان به گفتند چرا او میگوید بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید چون به نزد پدر میروم مقصود او از این سخن چیست سپس آنها گفتند این مدتی که او درباریان سخن میگوید چیست ما نمیدانیم درباره چه چیز صحبت میکنند عیسی فهمید که آنها میخواهند در این باره از او چیزی بپرسند پس وانها گفت من به شما گفتم که بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید آیا بحث شما درباره این است یقین بدانید که شما عشق خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت ولی جهان شادی خواهد کرد شما غمگین خواهید شد ولی غم شما به شادی مبدل خواهد گشت یک زن در وقت زایمان درد کشد و از درد ناراحت است اما به محض اینکه طفل به دنیا میآید درد و ناراحتی خود را فراموش می‌کند به خاطر اینکه یک انسان به جهان آمده است شما هم همینطور اکنون غمگین و ناراحت هستید ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این شادی را از شما بگیرد. در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید، یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به, به شما خواهد داد، تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید، بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گرد. تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد بلکه واضح و پی پرده درباره پدر با شما سخن خواهم گفت وقتی آن روز برسد خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمیگویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود زیرا پدر خودش شما را دوست دارد چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمدم. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را میدانیم و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ایم. پاسخ داد: آیا حالا ایمان دارید ببینید ساعتی می آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراکنده میشوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها میگذارید. با وجود این من تنها نیستم زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید، در جهان رنج و زحمت خواهید داشت ولی شجا باشید، من بر دنیا چیره شدم.